داستان زبان حیوانات بازرگان ثروتمندی پسر داشت به اسم بویو. بویو خیلی با استعداد بود و خیلی هم علاقه به یاد گرفتن داشت. پدر بویو اونو دست استاد بسیار دانایی سپرد تا تموم زبونها رو بهش یاد بده. بویو بعد از اینکه درسش تموم شد، برگشت به خونش، و یه شب با پدرش توی باغ قدم میزد گنجشکا روی درخت آوازی میخوندند جیکجیکی که گوش آدم و کر میکرد جوری بود که بازرگان گوشاش رو گرفته بود و میگفت این هر شب هرشب پردهی گوش منو پاره میکنن. بیو به پدرش گفت پدرجان درد میخواد بگم اینا چی دارن به هم میگن؟ پدرش با تعجب بهش نگاه کرد و گفت مگه میتونی بفهمی که اینا دارن به هم چی میگن؟ نه اما استاد زبون همه این حیوان ها رو به من یاد داده پدر. پدرش گفت پس پولای منو به هدر دادی؟ اون استاد با خودش چی فکر کرده؟ من میخواستم زبون آدمیزاد یادت بده، نه زبون حیوانا رو. پدرجان، زبون حیوانا که سختره. استاد خواست از اونا شروع کنه. همون لحظه، سگی پارس کنم به طرف بیو و پدرش میدوید. بیو گفت، میخوایم بهتون بگم که چی داره بهمون میگه؟ پدرش با عصبانیت گفت، نه دست از سرم بردار با این زبون حیوانات حیف از اون پولایی که تو کردم و دوباره به قدم زدن خودشون ادامه دادن کنار برکه رسیدن قرباقه ها داشتن با هم میخوندن پدر بایو همچنان غرغر می کرد همینم هم مونده بود که قرباقه ها خوش خدم کنن بایو دوباره گفت پدر میخواییم براتون توضیح بدم که چی دارم به هم میگن؟ پدرش گفت لازم نکرده من هیچ علاقه ای ندارم که بدونم این حیوان چی دارم به هم میگن؟ پدر بایو ناراحت و خشمگین از بهدر رفتن پولاش برای تربیت بچهش و با این فکر که دونستن زبون حیوان بدترین کاره دوتا از خدمتکاراشو صدا صدادت و بهشون گفت که فردا چی کار باید بکنن؟ بویوی صبح که بیدار شد یکی از خدمتکاران رو سوار کالسکه کرد و همراه با یه خدمتکار دیگه با اسب چهار نل تاختن. بویوی از این سفر که چی نمیدونست؟ اما دید که خدمتکار کناریش، چشمش خیلی غمگین و ناراحته. ازش پرسید کجا داریم میریم؟ چرا انقدر ناراحتی؟ اما خدمتکار جوابی نداد. از شروع کردن به شیه کشیدن و بایو از صدای فریاد اونها فهمید که داشتن به هم میگفتن این سفر برای ما هم خیلی ناراحت کننده است. داریم ارباب کوچیکمون رو به سمت مرگ میبریم. و خدمتکار دوم گفت دستور پدرتو خیلی بیرحمانه بوده. بایو به خدمتکاراش گفت پس شما از پدرم دستور دارید که منو ببرید و بکشیدم خدمتکارها جا خوردند و پرسیدند تو از کجا فهمیدی؟ بایو بهشون گفت این اسباب من گفتن پس روتر منو بکشین چرا دارید با انتظار زجرم میدید؟ خدمتکارها گفتن ما که دل نداریم این کار رو انجام بدیم به فکر یه راهی هستیم که نجاتتون بدیم همون موقع سگی که دنبال کالسکه میدویید پارس کنم بهشون رسید و بیو فهمید که میگه برای نجات ارباب کوچیکم حاضرم زندگیم رو بدن بایو گفت اگه پدرم سنگ اما بهجاش آدمای باوفایی مثل شما و این سگ که میگه حاضر جونش و فدام کنه هم پیدا میشه همون موقع خدمتکارا گفتن پس ما این سگر رو میکشیم و قلب رو میبریم برای ارباب و شما مرباب کوچیک میتونید فرار کنید بایه خدمتکارها و سگ بافا رو در آغوشش گرفت و از اونجا رفت دنبال سرنوشت خودش شب بود که به یه خونه روسایی رسید از کشاورده اون روسا یه جایی برای استراحت خواست مشغول خوردن شام بود که از حیات صدای سگی اومد. باید از پنجره گوش داد بعدش هم گفت زود باشین. زود باشین زنا و بچه ها رو بفرستین توی خونه خودتونم برای نگهبونی کاملا آماده بشین. نصف شب قراره یه دست دزد بهتون حمله کنه. کشاورزا فکر کردن که زده به سرش. ازش پرسیدن چطور فهمیدی؟ اینا رو کی بهت گفته؟ بایا هم گفت این سگایی که دارم واق واق می میخوان این خبر رو بهتون بدن اگه من نبودم واق واق این حیوان های زبون بسته به هدر میرفت. اگه به حرفام گوش کنین در امونین خلاصه کشاورزا با تفنگ پشت پرچین کمین کردن زنا و بچه ها در خونه رو رو خودشون بسته بودن نیمههای های شب صدای گلوله ها شنیده می‌شد. شد ها پا به فرار گذاشته بودن دو نفرشون با چاقویی که دستشون بود تو گلولای کشته شده بودن به افتخار بایو جشن بزرگی گرفتن کشاورزا می‌خواستن که بایو پیششون بمونه اما اون راهش رو گرفت و سفرش رو ادامه داد رفت و رفت تا شب رسید به یه خونه دیگه دودل بود که در بزنه یا نه که صدای قورقور قرباقه ها رو توی برکه شنید به حرفاشون گوش داد اونا به هم میگفتن یالا نون متبرک رو به من بده رد کن بیاد بده به من اگه اونو برام نندازید دیگه بازی نمیکنن. تو اونو نمیگیریشو میشکنه. سالها صحیح و سالم حفظش کردم بایو نزدیک رفت و نگاه کرد قورباغه ها داشتن با نون متبرک مقدس توپ بازی میکردن. بایو علامت صلیب کشید. قورباغه ای گفت: حالا دیگه شیش سال اینجا توی برکه است. از همون موقعی که دختر کشاورز گل و خورد و به جای انجام مراسم دعا و نیایش نون متبرک رو تو جیبش قایم کرد. و بعد تو راه برگشتن از کلیسا انداختش اینجا توی برکه. خلاصه بایو در خونه کشاورز رو زد کشاورز در رو باز کرد و بایو رو به خونش دعوت کرد تا شام بخوره موقعی صحبت کردن با کشاورز بایو متوجه شد که دختری داره که شیش سال مریضه و هیچ دکتری هم نتونسته علتش رو پیدا کنه و دیگه هم کارش تمومه بایو گفت معلومه خداست که مجازات میکنه شش سال پیش نونه متبرک رو تو برکه انداخته. باید دنبال اون نونه بگردیم. و بعد هم دختر مریض رو مجبورش کرد تا مراسم مذهبی رو به جا بیاره تا خوب بشه. کشاور تعجب کرده بود. با خودش میگفت این پسر چجوری این موضوع رو فهمیده. از بیو پرسید. بایو هم بهش جواب داد. از قرباقه ها. کشاورز بدون اینکه سر در بیاره، رفت دم برکه و دنبال نون متبرک گشت و بالاخره پیداش کرد و دخترش رو هم مجبور کرد که مراسم دعا رو برپا کنه تا خوب بشه. کشاورز و خونوادش نمی چجوری باید این کار بایور رو جبران کنن. اما بایور چیزی از اونا نخواست. ازشون خداحافظی کرد و رفت. فردای اون روز هوا خیلی گرم بود. باید توی مسیر دو تا مرد رو دید که زیر سایه درختی دارن استراحت میکنن. کنارشون دراز کشید و خاص باهاشون هم صحبت بشه. شروع کرد به صحبت کردن. ازشون پرسید شما دو تا کجا میرین؟ اون دو نفر جواب دادن میریم روم. مگه نمیدونی که پاپ مرده و پاپ تازه جاش داره انتخاب میشه؟ یه دسته گنجش ویه شاخه درخت بلوط نشسته بودند و جیک جیک میکردن. بایو گفت این گنجشک دارن میرن روم. اون دوتا مرد پرسیدن تو از کجا میدونی؟ بایو بهشون گفت من زبونشونو رو میفهمم. گوش کرد و گفت میدونین دارن چی میگن؟ چی دارن میگن؟ میگن که یکی از ما سه نفر پاک میشه. اون وقت واسه اینکه پاپ انتخاب کنن کبوتری رو پر میدن تا توی میدون که پر از جمعیته بپره. کبوتر سر هر کسی که بشینه اون پاپ میشه. خلاصه بایو و اون دو نفر خودشون رو به میدون پر جمعیت شهر بسوندن. رفتم بسط جمعیت. کبوتر تو هوا پرواز میکرد. پرواز کرد و پرید و پرید صاف نشست رو سر بایو میونه هله شادی تو لباسهای گرون قیمت بایو پاپ شده بود و روی تخت نشسته بود وقتی پا شد دعای تبرک رو بخونه توی سکوتی که میدون رو گرفته بود صدای فریادی شنید پیرمردی مثل مرده روی زمین افتاده بود پاپ جدید دوید به سمت پیرمرد پیرمرد رو شناخت اون پدرش بود عذاب به وژان کلافش کرده بود فقط وقت کرد تا از پسرش طلب آمرزش کنه و بعدش هم توی بغل پسرش بمیره بایه پدرش رو بخشید و بعد هم یکی از بهترین پاپ شد که تا اون موقع کلیسا به خودش دیده بود آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهر زفر کنین جایی که پریها و کتوله ها زندگی میکنن کانال هزار افزان همونیه که دنبالش یک دنبال. جایی که داستان های ای ای سر و ای و سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کنال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری